چند 16 شانزدهم از جسارلوست و چه فرقی؟ سلام پاکم، حمدالله سلام و سلام علی چهت او را اثبات خوب نهید چه خوب فیلی چه خوب نقاید دوم چهت قدمت تجربیه و سلوم چهت استنبال و شخص تجربیه هر سر مصنف مدنگ کرده نسا این چه درباره چیست؟ و بر اینکه از مدیریت منطقه بینی کاری طرح مطلقاً بکند چه بعد حساب به طور تفصیلی بده. اصولی یعنی که تمام با و باشه یک برنامه برای که بعد ما برگردیده از او و باید روز بلایی باشه کنی یعنی از روز باید یکمش بخواد. اما اگر من بهش نگاه کنم، می‌تونم به بگم که این یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه یه در تجربیه از دو جهت نسبت به افکامش بحث میشه هم نسبت به تکریف هم نسبت به بحث حالا ظاهر تنمات غیلی از خواه ها به تحبیلش کمسالینه که اتفاق دارن بر مجریت در مطلب ها چه مصیب باشه چه نباشه بنابا تجری تجربی حرام زامنه و تصریح خیلی از خواه ها در بعضی از خواه ها علیجا الا ان ذان نذی در با فسوا خلاص سلام وین شفاعه باقوم بن بیان ابناء فرده و برداه و دش مراعات علی الزید این که مخالف ای شده اجماع حاضر نشد نه امروکیه عنه نهایی و شیخن البحایی از توقف فریسیان این اگر کشم خلاف بشه اونها رو فریسیان نکردن بسیل دامه بلکه لو زن زی وقت حساب لو اخره این استمد و و این این کشم بود بلکه در تذکره مفضل قدقا این که اگر شخصی دم به زیر وقت پیدا کنه یا قدقه به زیر وقت پیدا کنه این شخص اگر تعقیل افتازه معصیت کرده و رو زمنش مستمر باشه و این کشف خلاف برو ولو کشف خلاف بشه یعنی برقای وقت معلوم بشه حکمه به معذیت شده این است و زن این اگر زنش ادامه بیدار کنید بل بل رو ادم و نسیان اینه اون چیز که اوجه ایدم و زن نداره این تا کلامش در تذکره منابراین اجماع محبتن نیست ما نمیتونه ادعای اجما کنید دو نفر مخالفه یا یک نفر در تو کتاب مخالف بس خبره بند ادم سید دو مشاهیخنا قلم مبادی سید محمد مجاهد می پردند ساهب یعنی شخص معصیت در بواد تجابی فربوده معصیت ننه بسته رب سید, سید محمد مجاهد یاسی بوده خاطر درد شده ما به مقاطی مقاطی رسول و که از آنها خلاف بین هم ظاهرن همچنین اختلافی نیست بین خوبه ها ظاهر چرا گفته میگم باشی فی ام که تریخ مزنون خطر آو مقصود خطر شروع که راه مزنون خطر مثلا یه راهی رو بده که مضمون اول خطر پس جاه گم به گرسان ها و مخصول یعنی خطره این مخصیت یه شب و اتمام و سلاتیه ولو بعد این عدم ازم زرده کیه. این سفر مخصیت ساب میشه یه راهی رو بده یا مضمون اول خطره یا مخصوط خطره سفر مخصیت میشه یعنی بود تمام ولو بعد اینکه عدم ادم زره بیه ولو بعد من هیچ زره ای به سلامان چیه این ظاهر رو که آورده اینکه که سروع تریق خطری و مفتر یا که از موضوعیه موضوعیه اون خواهد آخرشم فتح عمل زده بس اونه اعتماد داره که باقوه ها این موارد رو از مقارد برس موضوعی یا زمن موضوعی میدونن به حساب ندیمان یعنی لاخلاف اینگه به حساب نمیمان اون خواهد ظاهرا میگه مرادشون تریری از این هاست ها تریری باشه ظاهرن لاخلاف یکه موضوعی باشه از مقارد برس خارجه زدار گفت ظاهرن این طور داره میگه در مواردی که مقارد زمن به خطر یا بد این خطر اینه موضوعیت داره یا ترینیت داره خب کلمات مشکول تصدیمی بهش نمی کردن یک ترینیت داره یا موضوعیت داره بعدا در عواخه تصدیم میشه شه بهش که در این موارد زمن به خطر یا بده به خطر یا خود خوف به خطر و امثال اینها اینا موضوعیت داره ولو کهش به خلاف بشه چیزی تغییر نمی کنه من برای بر این اجما رو مناغشه کرده سغربیگن برای اینکه که مخالف داره به این اجما مخالف داره و یه اجیده یه یعنی اجما بناه اون مقلا علب استخان مقلا یعنی این شخصی که جرعت به مخالفت بخونه با مولا این رو قابه بلو کاری اتفاق نیفته و قبصده ای نداشته باشه اگر مولا بدونه که یک شخصی هروطه جدی که سر مولا رو بکشه بعداً اتفاق نیفتاده یعنی مخالفی واقعه در اومده دشمن مولا رو کشته این رو میگم اصالقا ولی اون شخص در واقع دشمن مولای باشه نه بسرش یعنی و حکم العقل به حکم تجریدی اجدلی طبیعیه و عقل انسان حکم می به اینجا تجربی ددیگ و حکم عقل به بومه تجربی اینجا اطلاق و دینی نیاز به استبلال هم در هر خودش جرب می در اصولش به طبع مشهور در زن تبیین این قاعده حسن و بحقی میان افعال انسان رو تفسیم کنند به سرس. بعضی هاشون ذاتن متصفه به حسنگوه بیشن افعال ذاتن متصف به حسنگوه بعضی ها اختضاعن بعضی, بعضی ها با اختضاعن اونه که ذاتن متصف میشه مثل عبد مثل زور. اونه که اختضاعیه مثل سلق و و اونه که لا اختضاعه مثل زر زبن زردن اگه برا تعدیب باشه خوبه برا تعدیب نباشه خوب نیست این دو تقسیم کرده و مجبورم این تقسیم سلاسی رو قائلن که افعال اتصافشون به حسنقو یا ذاتیه یا اختضایه یا لا نسبت به اتصام این لا به شرطه یه دیگه میخواد برای اتصامش اگه برا تعدیب باشه این زب خوبه اگه برای ظلم باشه بده این تقسیم در همه کلماتن هست بدون مناقشه در دوره سابق ما در این مناقشه کردیم به اینکه قاعده حسن خوب و این جزء آیات صول حساب میشه خیلی اهمیت داره آاان وتعمل نن خیل مهم سنقم تنها مجراش تنها مجراش حسن افعال اختیاری انسان در ذی این راه نداره یعنی در غیر افعال اختیاری انسان حکوم راه نداره بنابراین این اختیار انسان در در اتصال به و قم وقتی اختیار انسان ذیق باشه در اتساب این فعل به حسن و معلوم میشه حسن و قم ذاتی باشه اون بسمی که اومدن گفتن حسنقوف ذاتیه درست نیست هیچ فعلی حسنقوفش نمی نمیتونه زاتی باشه و مثال هم که براش زدن درست نیست چه اطاعت و معصیت باشه و چه عبد و ظلم باشه هیچ فعلی ذاتن مبتصف به حسنقوف نمیشه. به لها اختیار اختیار انتون دقیقه جزء اخیر عدت تاونه هست و وقتی اختیار دخیل باشه خود فیل ذاتن نمیتونه متصف باشه اتصاف هر فعلی به حسن و منبوط به اینکه که این فعل اختیاری باشه من آیات اصول که در کلام در فیل در همه جا به درد با این مقدمه اون تقسیم سلاسی درست نیست افعال اختیاری انسان یک قیصدار فقط اختیاری باشه و طول لاختیاری درست نیست ولی الان فرصت برا شرحی مطالب اینجا نداریم بخواهم این کنیم ولی اجالتاً میخوام بگم که حکم عقل به قبع تجربی عقل انسان میگه تجربی قبیه در نوال از افال اختیاریه انسان باشه خب حکم عقل منطقه حکم عقل به قبع تجربی مردده میگه که حکم عقل یعنی چی یک تردید 3 جانبه داره آیا حکم اقلی یعنی حکم اقل نظری آیا حکم اقل عملی یا حکم وغلای عقل خودو میشه وقتی میگن اقل حکم به قد میکنه اقل نظری میگن عقل, عقل, عقل عملی رو میگن یا اینکه عقل اقل میگن اقلار حکم میکنن نه اقل عملی و نه اقل نظری خودو میشه. این یک تعدیم طوری داره که در کلمات پر واضح میشه حالا این چهار تا دلیل اقامه کرد بر که تجری هم اجما و هم بناه او هم حکم هم و اینکه دلیل چهارمی این وقت یو و رو دلال یک دلیل عقلی رو با یه تقریب دیگه از محتمل سبزواری در ذخیره میاره ایشون با البته حالا دلیل یا تایید خیلی اهمیت آورده من دا داره ایشون یه عیل آورده بحثش میگه من هستم مجنون داره قا می‌کنه بر قوم تجربی حالا چرا چیزی میاره چرا راهی من دلیل نیاورده اون به خاطر اینکه ورجش معلوم نیست عنای او غلاوت استحباب باشه ما این بحثش معلوم نیست یعنی بحث در استحقاق نیست این استحقاق بر ما استحقاق متخلف بر حرمت ما حرمت و قه اثبات نکنیم نوبت استحقاق نمیرسه لذا یو اگیدا آورده خیلی وجه مهمی نیست ولیو بحث کردیم وجهش معلوم میشه دلیل عقلی رو یه طریق دیگه معارف سرزواری در رو معاد آورده پیشین اومده قائل شده به اینکه ما از قرهان صبر و تفسیم قرهان صبر و تفسییم استفاده می‌کنیم و با نفسی وضعی از احتمالات منتهی میشیم به یک احتمال که بهتر نتیجه میده به نظر منطقی بهتر نتیجه و اون اینکه اگر ما فرض کنیم دو نفر قطع پیدا کنن به خمریت دو تا مایه و بیان اینو بخورن نفاتی ما مخالفت با خدا بکن. قطع به خمریت پیدا شده نسبت دو تا اینا و تصمیم گرفتن اقدام کردن اینو خوردن بعدا ان کشقه یکی خمر بوده یکی آب بوده چهار صورت داره یا باید بگیم هر دو عقاب میشن یا باید بگیم هیچ کدام اقاب نمیشه یا باید بگیم شارب خمر اقاب میشه نه خل یا باید بگیم شارب خل اقاب میشه نه چهار صورت داره به این چهارتان پیدا میشه بنابراین از نظر مقام سبود چهار چیز تصور میشه اقاب هر دو عدم اقاب هر دو اقاب شار بلخم دون العکس و بالعکس چهار دست میشه اما عدم اقاب هر دو منتفی هیچ کدام اقاب نداره ما نمیشه یا یعنی اینکه بیان بگیم شخص شار بلخل اقاب میشه اینم هم خلاف قاعده عدل نمیشه شار بلخل اقاب بشه شار بلخم اقاب نشه یا دلعکسشو بگیم, بگیم شار خم اقاب نیشه شار بلخل اقاب نمیشه این هم درست نیست از نظر قواعد هی کمی یعنی سلامی و پس درست نیست به خاطن اگر بناباشی ما بگیم شار خم اقاب میشه شار بلخل اقاب نمیشه ایناتج اقابه به یک امر غیر اختیاری و حتماً باید عقاب منوط به یک امر اختیاری باشه و مفروض اینه که در این مورد عقاب منوط به یک امر غیر اختیاری، امر غیر اختیاری به تومه تصادفت کا واقع عادم اینکه این خم در اومده یا خر در اومده تصادفت عادم مصادفت این امر غیر اختیاریه بنابرای نمیتونیم ما تکدیف رو و اقاب رو منعود به یک به غیر اختیاری بکنیم نزان نمیشه بگیم شار بلخل اقاب داره شار بلخل اقاب نداره در این صورت یعنی زن و اقاب منعود بشه به یک به غیر اختیاری اون درست نیست فتح این احتمال چهارم که هر دو اقاب بشن هر دو اقاب بشه و وقتی یتعییم با برهان صبر و تفسیم این که هر دو اقاب بشه نتیجهش اینه که قدر مطلقا حجته چه مصیب باشه در رابطه با شارب الخلق و چه مصیب نباشه در رابطه با شارب الخلق این هم شد وقت یو قدر و دلال اطول عقل الازالیک و امنایزا فرز قطع به خمریت دو تا زرد پیدا کردن به ان قطع هر دو ما بکن ما معین خمرن و قطع آخر رو بکن ما آخر خندو خمرن یعنی هر دو قطع به خمریت دارد بعد مردم مخالفت با این قطع کردن اقدام کردن به خوردن ولی برای یکی خند اومد برای یکی خند بشر با همون بله چی؟ بله اون جوابه اون جوابه که اقام بر یک عمل اختیاریه چون اختیاری بودن فیل لازم نیست حتما اون نتیجه اختیاری باشه مقدماتش اختیاری باشه یکی در اینجا اختیاری بوده دیگه اون جواب از این و شرباه ما و تفقه مصادفت و عهده ما للوافه و مخالفت الاخر للواقع. اتفاقا یکی مصادفت در اومد خند بودی که خند خب چهار تا صورت داره ما ان يَسْتَحِقُّهُ الْإِقَامِ که آخرش نگه فتحین اول یعنی متعین یا هر دو مستحق اقابم اولا يَسْتَحِقُّهُ اَهَدُهُمَا نه مصادف نه قیل مصادف او يَسْتَحِقُّهُ الاقام من صادف بطحق الواقع دوند آخر اول اکس لا زبیل الستانی یعنی عدم استحقاق هر بلا سبیل الانرابه یعنی استحقاق شعار بلخل این هم درست نیست بلا سالس به خاطر نهو مستلزمون لعنا تب استحقاق اقام به ماهو و خارجونه ندن بنابرای مستحق خم را اون شخصی که شعار خم بوده اون هم که مستحقاق باشه ولی یه که تجدیب به اقام منوزو بگم به غیر اختیاری باشه مصادفت در اختیار من نمیده مسترزمون دینات از و دقا به ما هوه اختیار، الاختیار و هو مناق لمای اختزیه العدل و تعییلت اول یعنی استحقاق مصادق و غیر مصادف همون اعتمال اول وقتی یه تعییل اول یعنی معناش میشه معنای این میشه حدیجیت فضل بطلقا چه مصادق باشه چه نباشه نتیجه که برش متردد میشه مرمت تجربیه اینم ددارت این دلیل هم میشه با تقریباتی بده این شیخ بده برای چی؟ برای حالا یه مسئله فضاییه متفرده بر این شخصی که شلاغ بر شخصیه که واقعا او شعر خوشه. یا نه قفص پیدا کرده بود و در زمان تجری بوده اون معلوم نیست ولو شعر به خمدم بوده آقا اینجه از نوادیز مردده دیگه از نواده مردده اون خود شلاغ باش خود شهیدتانی هم داره دراشه الله و منعود به حکم بازیه به خاطب این اون باید تشکیز بده خیلی موضوع مشخصی نداره و الان روایاتی گفته شهار بلخم یوزرف اون یوزرفه اینطور نیست که حتمی باشه جزمی باشه یه هر کسی شور خم کرد حتما شه الله و نه منعود به نظر بازیه اون بحث فقری اصولی نیست اعتباطی هم دارید و یه اون که نمخفت شد به کن حالا در هر چهار دلیلیشون هم در اجماع هم در بنای اوغلا و هم در دلیل عقلی اول هم در تقریر معقف صد و یکی یمكن خرجت تلفون، اما اجماع اجماع میگه الخل موصل منه غیر هوست اجماع یا موصل یا منقول یعنی یا خودمون گشتیم پیدا کردیم همه فتاوا گشتیم همه اجماع داریم خاصه یا منقوله برای ما بعضی از اونا هایی که یک جز نقل کردن مثل شهید اول مثل علامه مثل ندریس هدی دیگران نقل کردن برای فرمو هست که حدیت داره غیر حاصل اون که حاصل نشده به خاطر اینکه مخالف داشت مضافا برای که چی میتونه ما تحصیل کنه یعنی شیخ اتوزی همه فتاوا رو میگه چی اینطوریه این هم به احسای سوریه خیالاته که ما اجماعات رو دیدیم و همه اتفاق داره و علمام اگه بسی اتفاق میکنیم محالات ثانی در حوزه بغداد یا در حوزه نجف یا در حوزه های شیع اون زمان چند تا از علما در یک شهر بودن بعد همهش مگه یک تراز بودن سلال رو باشه خطوصیبی نمیشه یکی از پس اجماع محسل و تحصیل کردیم و این حرفا اینا با واقعیت خیلی فاصله داره عبادون یعنی نمیشه بگیم ما این اجماع دیگه محسله اجما تحصیل کرده ایم یک مسئله غیر اختلافی پیدا نمیشه یعنی حتی در بدیهیات اختلاف داره اون آقا ضروری دینه از موارد اجماب بالاتره حارزه اون ضروری دینه اختلافیه چرا میسید اون هم اختلافیه همه شون اختلافیه ضروریات دینه بذارید کنار با اون تفسیری که داره بقیهش اختلافیه من اول نمیشه بگه اجماعه داریم کدوم تفسیر شیخ توسی چند تا از نظریات رو میتونه تفسیرش کنه بیشتر از صد تا با صد تا شاید امام صد و یکمی بوده بعد اینا قایل به اجماع دخولی امام داخل مجمعین و اینی بعد اصلا قابل اثبات میسه امام داره کاهینات رو میخواد اداره کنه بیاد اجماع مجموعیش کار کنه یا مثلا اجماع حدسی ما حدس میزنیم این نظر موافق و نظر امامه و اگر مخالف بود امام باید اجماع رو به هم میزن یا اجماع لطفی لطف امام اختضار میکنه یا لطف خدا اختضار میکنه اگر یک حکم خلاف شرداد تصویب میشه تصویب میشه بین فقهای های بغداد این حتما به هم بزنی یه زلزله بیاد اینا نشه قاعده لطف اینه همشون مختل من خیلی تأثم نسبت به فقه هامون دارم و فقه همون من ازاله اینا هم نمیپذیرم باقل اثبات هم نیست خیالاته اجماع و همسان دیجان جلسه اجماع کردن هزار نفر از علما جه همشون مثلا اینطوریه ما جز پیدا نمیکونیم شاید راه ای داره ما روایتی نداریم دلیلی نداریم حتما قول امام داخل قول موجبینه اینو نمیشه اثبات کرد و اصل اجماع از امام پرورش هم به دست خودمون پرورش دادن یک دلیل بی اساس هر حکمی دلیل خودش میخواد از اجماع محسل خیلی قابل تحصیل هست ولی دلیل اقلی من هم اقلیه با یه تحریم رو اجماع منقول که میگن منقول به خبر واحده و اصلا حتیت نداره پس اولی حتیت منتها صغرا نداره یعنی حاصل نمیشه دومی هم صغرا نداره یعنی حتیت نداره المحصل من او غیر حاصل و منقولم که خبر غیر حقیقت نداره و مسئله تو عقلیه منظور من مسئله عقلیه در مسئله عقلی اجما مران که اجماع, اجماع تعقل محض باید باشه مسئله عقلی که عقل بهش راه داره نمیگه نه اجما داره که و مسائل اجماعی باید بر خلاف همه ادله باشه یعنی در ریاضیات در طبیعیات در فلسفه در حصور در فقر در هر علمی هر کی بگه اینم باید یک خلافش گفته باشه یعنی اجماع وقتی برمی‌گرده دو, دو تا میشه پنج تا که برخلاف همه ادله این اجماع کی است در واقع اگه یه اجماع بیاد بگه دو, دو تا میشه چهارتا تا اصلا کیتا تعبد محض باید باشه یعنی برخلاف همه ادله باید گفته باشه و مسئله تو عقلیتون بنابراین اجماع محسن بیفایده میشه خصوصا اینکه از نظر سغربی اجماع محسن کجا بود و های مثل اللامه داریم تجربی مثل تجربیه که ماستنه داره حسنقوب است ومسیلات و احوییتون مع ما مخالفت غیر واحدی که معرفت من و وسط تعریفمون بواید الشهید و امال منگول اجماع منگول من ها لئیس حدیت هم فلمقامه در مساعد اصطوری حسیت نداره اجماع منگول فلمقامی در مساعد اصطوری کلامی حسیت و اما بناه الاغلا اگر کسی بگه بناه اغلا بلینه و استحقاق ام سالين هاست و اما بناؤ عقلال و اصل به و وجوده تا اينما هو قائم على بزم شهر من حيث ان هازل فعل يكشف عن وجود صفت الشقاوه فيه لا على نفس فعلي يعني یعنی بناي عقلال و اصل كه باشه نا که كه بنایه بر غلابم شخص به خاطر قبح نه قبح فعلی و اقاب منود به قبح فائلی. اقاب و تحریم و عذاب مال فعل بده نه انسان بده فعل بد قبح در مقابل قبح فعلی، اقاب مال قبح فائلیه استحقاب مال قبح فعلی و مفتوضی که بنایه و باشه یعنی یه قائمیستی که بنایه و غلایی و استخواه باری لوسون لغا سبوته و این نماه و قائم و نلا مذنبت شخص منحیص و نهازم فیل یعنی شرب خل به اعتباد این که خمر بوده یک شفن وجود صفت شفا و تفیه لا علا نفس نفس فعلهی بخاطی فعلش طبیعیست همان این که شفن من منحالهی انه بهی سلوک قدر قدرت علاقم به سیده ای و قتل هون چیزی که او بدونن یک شخصی اون شجاعت داره که اگر قدرت پیدا کنه مولای خودش رو میکشه در این موارد و ان مذمته ال قداه کشم عل المنکشم در قاشه بر یعنی بر اون سو استریدن در باطن خبیثه چقدر آدم بدی؟ نه که فعلش بده به که مؤخر نشه ولی همین حالت رو مذمت می‌کنن بنابراین قومش قائلیه نه قوم فعلی و مدایی که در اقاب مستقامه گا قوم فعلی خود اون از نظر کلامی اون همه از نظر کلامی هم, هم, کلامی هم. هم نظر معتقد خراسانی اونا میگن خود فعل بد ایشون میگه نه بد شیخ انصاری با آخوند خراسانی اختلاف دارن 180 درجه هم فاصله این میگه نداره خوب فیلی نداره ایشون میگه خوب فیلی داره نظریات داری میسونه و من هنها یز هد الجواب ان خوب تجریف این لکشف ما تجرابهی ان خوبص فائل لکونهی جریع ان و آزمن علال اصیان و تمرون نا علاقون الفعل مبغوزن للمانون بنابراین مشکل فعلی نداریم فعل شرم الخل بوده مشکل اون اراده و قصد و نیت این شخصه مذنبت تو غلایه ماشه بر فائلیه و برقب فائلی مستوجب اقام نمی کنه انسان رو در نظر شیخ هنساری و حاضل اندل در باب تجری بر یک تیکاون حزنلفعل ال غ من مین واقعا این لااق هم داشته باش. یعنی این فعل که م مننیونن نیست بهخاطر رو بخله آیا این فعل مربوز معولات منث و تع با اعتقاد مکلت بکنیم من اعتقاط پیدا کردن این آیا با اعتقاد من اعتقاد من اینو تغییر میده شرب خل من بشه شرب خرم واقعا نه پس اعتقاد انسان چیزی رو نمی تغییر نمیکنه تغییر نمیده وقتی تغییر نمیده نمیشه بگیم قبیه فعلش قبیه بوده. حالا در واقع تجربی که آیا این فعل غیر حرام واقعی آیا مبغوظ مولا هست چرا مبغوظ باشه منهج و تعلق قطع علم مکلف به کونهی مفعوزن بحث در اینه عن نهاذل فعل المنهيان بتبادگی دون به ان سوی شریرت الاحکام سیدی و گونه‌ای جریان فی مقام تقیان والمضیه و اذن علیه و ان هاذا غیر ممکن بیاذل مقام بنابراین بحث اصولیه بحث کلامی نیست یعنی بگیم آقا این حالت بعد یا بد نیست. درکی نمیتونه انکار بکنه. واقعا نشسته. بس تصمیم بگیره مولای خودش رو بکشه، قدرش بکشه کار بد بکنه، تصمیم بعد خودش بده. غیرمون کردن فی مقام احدی نمیتونه این بکنه. ولی بحث ما اصولیئه. بحث ما کلامی نیست که بحث ما اصولیئه. آیا چیزی که واقعا حرام نبوده؟ با اعتقاد من حرام میشه. واقعا حرام میشه لبخنده. ولی من اعتقاد پیدا کردم به خمریات این واقعا حرام میشه یا ظاهرا حرام میشه بحث در وجود یک حکم مماسه بحث شوریه چرا آخونده خراسان و دیگران بحث بردن کلامیش کردن و بعد آوردن در اصولا هم میگن همونه کسی نمیگه دیگه این نیتش باعث توله داره شقاوت داره اینا غیر ممکنن فی المقام این کار کنه و من شیخ 5 سالی هم این کارو نمی کنه منتهی به باب کلام در باب اصول ما نمیخوایم بگیم ما میخوام بگیم اگه شخصی به خلب کنه که واقعا حرام نیست ولی قطع به حقیقت داشته این قطع به حقیقت حرامش میکنه یا نه پس کاملا اصولیه ما نباید که تعصبی برخورد نه آقا شما طغیان کردی بر مولا ما تمرد کردی این بحث اصولی نیست در اصولی محض مثلا نمیشه ما میگیم واه حکم شرعی داریم یا نه حکم شعریز نمیتونه بدون موانه اثباتش کنه نمیتونه بدون موانه نبیش کنن ما میخوایم بگیم این واقعا حرام نبوده با اعتقاد من حرام میشه قاعده ای مشغور دارن برای اینکه که دل احکام الواقعیه تطرد تب و موضوعات حل واقعی. احکام واقعیه به موضوعات واقعیه تعلق میگیره نه به موضوعات معلومه عارفه اینکه قمقاضی نباید بگن حرامه برای چی حرام میشه اعتقاد من چیزی رو تغییر نمیده اعتقاد انسان چیزی رو تغییر نمیده و حرف شیخ همساری خیلی پتینه خیلی فخره بین باب کلام و باب عشق فرق بشه بله بله کی گفتیم قطع موضوعی اصلا بطرنی در باب تجری قطع موضوعی صفتی از بحث خارجه روز اقبل هم قط قطع موضوعی صفتی از بحث خارجه یا طریقی محض، یا موضوعی کشفیه علا کل حال واقعی در کاره وقتی واقعی در کار باشه قطع من چیزی نمیتونه تحریم نمیشه بگی این شخص شاره هم‌ری برایش حرام استهباب داره اون تمرد کلامیش جای خودش ولی شخص حرام انجام نداده اعتقاد به حرام پیدا کرده بعضی از مسائل در اطراف این باب برای نیاز به بعضی از جهات هست مطلب اول از این جهات اینه که حقیقت قدو کمی اعتباریه حقیقت دادن اعتباری نزدانتی. یعنی اعتباری بودن به این معنی که القطع یجب مطابعت رو بود این آمین به نمیستن ولی علت مطابعت چیه؟ چرا یجب مطابقت رو؟ تمام اسرار پیچیده در هم عدل داشت. که وقتی میگن این قطع واجب و اعتباعه مشکور میگن یعنی منتزیت داره، معذریت داره شخص متجریف هستاید احباب بشه دیگه وقتیات به چه معناست یعنی منجز تکیفه وقتی منجز تکیفه وقوع پیدا بشه به بازوندی که استفاده به عمل پیدا کرده و مرتکب شده برای شانس درآورده شانسش اومده که این خرم در نمیاد او یجب متابعته مسلما یعنی همه قاعده من تا دلیلش چیه چهار تا دلیل داره یعنی چهار تا مبنا براش هست مبنای اولی نکه او یجب یه جب متابعته لکونهی قطع یک دوم لکونهی کاشفن تام. این مبنای دوم مبنای سوم لکونهی متعلقن به حکم المولوی که نظرش ها ایستر چرا واجبون به خاتنگ قطع به احکام شارع پیدا کردن شارع حق خطاعت داره حق به اطاعت داره ما این رو تجیهش کردیم چون متعلق ما متعلق قطع ما حکم مولوی بوده قطعیت داره و اگر من قطع پیدا کنم اینجا سه طبقه است. حالا چی بیشه؟ یعنی چی؟ من قطع پیدا کنم که اینجا روشو بستم، برای که زود پر درست بشه چه اشکالی داره؟ چه سمره ای نداره؟ قط پیدا کنیم به اینکه خیلی از امکانات رو طلبه ها ندارن ثمره برش متلطر نمیشه در اصول که نظر میشه ثمره داره قطعه به خمریت قطعه به حرمت و امسالین ها به خاطر که این مقبوع ما یک حکم مولویه که از این حق و طاعه رو بشکنه باب میشه و شخص متجری حق و رو تذیعش کرده شعر حق اطاعت داره ما حق اطاعت رو تضیحش کردیم ولو کار بلیم هم نجد. ولی حق اطاعت رو تضیحش کردیم چرا به خاطر که حق اطاعت اون وقت توسعه داره موارد احتمال تکلیف رو هم منجز میکنه ما که به تکلیف داشتیم حتی موارد احتمال تکیف رو منجز میکنه بر انسان. یعنی یک هزارم دستر احتمال بدی خمره باید اشتناب کنی بس با ما که قرد ست در صد داشتیم ما که جرد داشتیم ما کار به خمر و خندش نداریم مهم اینه که قرد تعلق گرفته به تکلیف مولوی و اگر مخالفت بشه تزیه حق اطاعت مولوست و این حرامه مبنای چهارم اینه که قد حجیتش اعتباری به معنای وجوب مطابعت به این تفسیر که چرا حجیت داره چرا واجب مطابعتش وجوب مطابعت یعنی که وجوب مطابعت در, در این موارد یا حکم اقلاعیه یا حکم اقلعمنیه به این معنا که محرزه قد چرا واجب تبعیتش به خاطر محرزه که محرکه به چی؟ محرکه به سوی کمال. ما هر چیزی رو دنبالش داریم میریم به خاطرش داریم. اگه ظهر مثلا میریم خونه به خاطرین داریم خونه یه هست، ناهاری هست استراحت میکنیم. اگه صبح درس میایم قسط داریم. انسان دنبال تردید راه نمیری. و هر کجام دنبال چیزی هستیم دنبال کمالیم. حالا یا اشتباه یا غیر اشتباه انسان با قطع نظر از دین اغلا همشون دنبال کمال هم. حتی بدترین انسان هم. دنبال کمال بنابراین بنابراین به اون پیدا نکنن دنبالش نمیرن فرد یه چه مطابع طبول نکونهی محضر کن نه ول کمال مقصود نه کمال مطلوب که بشه ارفان نه کمال مقصود چیزی که من قصد کردم اون برسم چرا مسافرت میریم؟ قطع داریم که مفیده چرا درس نمی خونیم داریم که درس بلد نمی خونیم تمامی به خاطر قصه بلد که ما حجیت نبود اینطوری نمیدوزن فرض حیات داره پس به یمنه آقایون ببینین این اون فرض بذارم در علم اصول ما عرفان و فلسفه نمیخونیم بیایم ببین بگیم مثلا حق تعالی بر ذات تعالی که لا متناهی من جمیع کهان اینا ما اونو نمیخوایم نه اینطور نیست ما در علوم اعتباری داریم بحث می کنیم حق و طاعه مال علوم حقیقی مال الهیات و معنی اخست مال علم و نیست ما در دنیا دنبال چی هستیم دنبال تعام دنبال معاش قاعده حسن قبهی هم مناغشه کردیم قبلا به خاتی که میگن اما حسن قبه عقلی اغلای جنگیم اغلا هر کاره دبی هنجام میدن بنابرای حسن قبه عقلی برای اغلا همیت نداریم و طبعینا قد یه جو مطابعته بود لکاونهی که کننه کمال کمال مقصودش نه کمال مطلوب انسان ما حرفان بحث نمیکنیم، کنیم بعد مثلی که از که این محفظیت اینها به خاطر چیه؟ به خاطر اهمیت یعنی در مناقشه قاعده حسن و عقلی یکی از مطالب دخیل اینه که پس حسن و برای انسان مهم نیست چی مهمه؟ یعنی اگه این قاعده تمامیت نداره پس چی تمامیت داره؟ اگه قاعده حسن و رو کسی بگه نه تمامیت نداره اینطورم که میگن نیست پس چی هست؟ اون چیزی که برای اقلا مبزهه اهم یعنی همیشه دنبال امور هام میگن. و چیزی که اهمیت داره. میخواد دویر باشه میخواد حسن باشه میخواد جهنمیش بکنه میخواد بهشتی شده فرق نده بنابراین مبانی خودیت بعد به معنای وجود متابر معلوم شید یکی از این چهارتاست چهارمی محرکیت محرکیت معیارش اهمیت چرا انسان تحریک میشه به خاطر اهمیت چرا میرم آب میخورم به خاطر اینکه آب خوردن برام اهم چرا غذا میخورم برای اهم چرا دباس میخوشیم برانکه اهم چرا لباس رو از یعنی در میاریم به خاطر اینکه اهم بنابراین ما همه کار دنبال اهمیت نه حسن و قوم. ما کار و رو باید بسنجیم در هیته الموضوع اوامر و نواهی مواری عرفیه داره تقریب میشه تا تشویب بشه به مولای حقیقی این یک مطلب مطلب دو همینه که خجرگی رو این مطالب زیاد این همشون پر مطلبه اینا رو باید بگیم الان من از همه این مطالب دوتاشو به زور وقت باشه بگم الان یکیشی گفتم یکیشم میگیم بقیهش باز میمونه ممکن میشه برای فردا فردان مطلبش ده تا از این مسائل رو داره این که این بگیم خدا میدیم مدرب دوم که خیلی مهمه اینه که تجربی رو حالا آخر وقت من آخر وقت خیلی دوست ندارم طول بدم یعنی بگه آقا پنج دقیقه مونده اینطوری نیست من رو اعتقاد ندارم برمومه آقای تبریزی میگه پنج دقیقه مونده ده دقیقم طول میداد و خسته کننده بود حالا هم خسته کننده است ولی فردای آقایون مهمه. تمام اصول و خوبه ها باب تجردی که باز کردن اون چیزی که دنبالشن تکلیف و اقاب آیا حرمت و اقاب هست یا قافل از این که باب تجری بهترین باب برای بحث از وضعیات هم هست یعنی فقط دهیم این شخص شرب خم کرده ما اعتقاد پیدا کردیم این زن سات البعده دوشته کنید اتفاق پیدا کردیم این زن ذات طلبه بعدا ان کشف نه، بینر شوهر منباشن اعتقاط پیدا کردیم به اینکه ما تیممه مخالفت کردیم ووزو گرفتیم نماز کنیم ان کشف قلق اتفاق پیدا کردیم به وظیفه ما خوصله مخالفت کردیم وقتی منوزو گرفتیم یا تیمم بعدا ان کشف تمام این موارد از مواردیه که از باب تجری یعنی حکم مرضی چی میشه حالا مثال هایی که آقایم بنویسم مثال اول یعنی مخالفت مکتوب با واقع باب تجری یک عنوان عام پیدا کنه مفعم من با واقع مخالف در کار به عقاب و نزدن. اون کار خداست و همه ما ان انشالله یه جایی عذابمون هم یکی اینا شکی درش نیست بحث اینی که الان چیکار کنیم مخالفت مکتوب و واقع مثال های فقری یه ده تا مثال فقری من نوشتم چند تا شما یافتاش کنید مثال اول ازا وطع افوجول از زوجته الهاعص و با آن ادم این از مواقع مخالفت مکتوب با واقع خیال کرده حایزه بعد از وقت یه که این هایست نیست بنابراین کارش حرام نبوده این آیا کفاره رو داره نداره تمام مناثار وجیبش مترسل میشه یا نمیشه اگر شخصی به اعتقاد این که زنش در طهر غیر مباقعه نیست طلاقش داد چون طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشه طهری باشه که مباشرتی نشده باشه در نشه. اگر طلاق داد در طهر غیر مواقع اعتبار پیدا کرد که طهرش طهر غیر مواقع است طلاق داد بعدا دا این کشفن یا زنش رو در طهر مواقع طلاق داد بعدا دا دا این کشفن خلاف که طهرش خیر مواقعه اید. این دو مثال مثال سفبون در رابطه با مفترات ماه شخص به اعتقاد دروغ دروغه به پیانبره دروغه قبان ست کن یعنی ما گفتیم این روایت دروغه رو مثلا بگیم به حاتین خوبه بعدا قبان ست این سه تا مثال هر تا مثال دیگه هم فرزن شده که از موارد تجربیه تجربی همین ها رو باید جواب بده در این موارد چی بگیم مقفور ما با واقع مخالف سر اومده کاری به اقاب و عذابینام نداریم احکام وز اهمیتش بیشتر در قام تکلیفیه این سه سال هفت باشه فرد ان شاءالله برای اینکه معلوم باشه که باب تجربی باب دی خدی نیست در جوردار اون که وقتی مولا چنین امری رو می‌دونه بعدش هم می‌کنه